اما علاقه من دیگر به این دنیا او تمام شده بود. خیال نکنید که ترس برام داشت. محیط آن روز تهران ترس و وحشت و بدگمانی و یس بود. هم از هم می ترسیدند. ترس من هم نه کمتر و نه بیشتر از ترس دیگران بود. به علاوه من خطر احساس نمی کردم. شهبانی آدمی مانند خداداد را می توانست ویلان و سرگردان کند، خانواده من در تمام دستگاه دولتی نفوذ داشت و من هرگز نشیده بودم که دولت آدم‌های محترمی را گرفته باشد. گرفتاری وزیر جنگ و به زندان افتادن او و رجالی همتراز او امر دیگری بود. آنها با سیاست عالی کشور سرکار داشتند و الا با من کسی کاری نداشت. اینطور پهلوی خودم فکر می‌کردم. از طرفی زندگی من به حدی شوم و یک نواخ بود که با معموری شهبانی سرکله پیدا کردن برای من جز تنوع مفرح چیز دیگری نمیتوانست باشد. من دیگر یک هدف بیشتر در زندگی نداشتم. روزگار داشت به من لبخند میزد. من مدی را که سالها ندیده و نشناخته دوستش داشتم پیدا کردم و جلب او به هر وسیلهی مقدس سریم ای بود که من برای خود تصور میکردم چه خطری بزرگتر از این بود که او همیشه با من سرد و رسمی گفتگو کند دل من بتپد و او بی و بی خیال کار خودش را انجام دهد و من مجبور باشم به با او دروغ بگویم مگر میدانستم که میتوانم یک رابطه معنوی امیختر از رابطه سیاسی به منظور انجام فعالیت‌های پنهانی با او برقرار کنم حاضر بودم که خودم را به پای او بیندازم از همه چیز دست بردارم شخصیت خود را نابود سازم اما دلم چنین گواهی میداد که با او از این راه نباید در افتاد باید به او دست و پنجه نرم کرد و در زد و خرد و شکستش داد از زندگی خود برایش گفتم از مسافرت به ایتالیا حکایت کردم تمجیدی که استفانه از او کرده بود ترزه آشنایی با خدا داد را برایش نقد کردم در تمام گفته هایم خودم را مهم و بیباک و سنج قلم داد می کردم. وقتی به من می گفت که باید احتیاط کرد در جوابش می گفتم فکر من رو نکنید. کار از کار گذشته، من ها راه و روش خودم را رو خوب بلدم. درباره جوانان پاریس طوری حرف میزدم که گویی همه آنها بی تجربه و مده و هستند. از همان وحله اول در گفتگو با او نقابی به صورت زدم و تشخیص دادم که این مرد نباید قیافه واقعی من رو ببیند و اگر به ضعف من به تمام عیوبی که در من هست پی ببرد که دیگر شخصیت من برای او بیارزش خواهد بود کارهای کوچکی را که به دستور خدا داد انجام داده بودم صد بار بزرگ تر میدادم. می‌دادم. درباره در مطالبی صحبت به میان آوردم که آن روز از اخته فهمان بر نمی آوردم هرچه از دیگران شنیده و یا در روزنامه خوانده بودم اثر فکر خودم غالب می‌زدم. گاهی عین کلمات خدا داد را به زبان می آودم. خنده از چشم و لبهای من نمی پرید تمام هنر دلربایی خود را به کار می بستم آنشب اول به خصوص از این همه دلبری مقصودی داشتم در زم صحبت به من گفته بود که خوب نیست تا مدتی او را ملاقات کنم حتی نشانی خانهش را به من نمی خواست بدهد در صورتی که من دیگر تصمیم خود را برای آینده گرفته بودم و می خواستم با او کلنجار بروم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 او از معاشرت من، از صحبت خوش من، از صورت زیبای من، از خنده های شادی من، از چشم های پرشور و فتن انگیز من لذت ببرد. اگر در پاریس تحت تاثیر خداداد قرار گرفتم و هرچه او گفت پذیرفتم دلیل داشت. آنجا حاضر شدم که جان خود را فدا کنم. به علاوه در پاریس هر انسانی با چشم دیگری به هم خود نظر می کند، من وقتی به ایران آمدم و با مردم تماس پیدا کردم، معیوس شدم. من مردم عادی را هوشیارتر و بیباکتر تصور می کردم. اما در آن تهران مرگبار آن روز به چشم می دیدم که غصاب سر کوچه با تملق و تزویر به پاسبان رشوه می دهد. آنجا در پاریس حاضر شدم که زندگی خودم را فدای مردمی که در تصور من وجود داشتند بکنم. به علاوه خیال می کردم که برای من شکست خورده ادامه هستی جود از این راه راه دیگری محصر نیست یا بایستی بایی که از این بابهای پر رو نادان زندگی کنم یا خونه دل بخورم و جان خودم را تمام کنم راه سوم همین مبارزه بود این مبارزه مرا سر شوق آورد به من امید داد منتها موقتی تمام وقتی که با او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 به خصوص از خودگذشتگی این دختر ملوس برای من نمونو سرمشق بود روزی مهبانو برایم در درد دل کرد و گفت اگر می دانستی چقدر خداداد را می خواهم خودم می دانم که این عشق به ناکامی منتهی خواهد شد خدا داد یا کشته می شود یا از فرد زحمت و مشقت جان خودش را تمام می کند علیل هم هست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 روح و جسم من طالب چیز دیگری بود. در تمام پنج سال توقف در پاریس، یک بار ما مردی که از او خوشم بیاید روبرو رو نشدم. یک بار روح کوفته من آماده نبود از مردی تقاضایی بکند. صحیح هست که من مردم کشور خود را دوست نداشتم. زیرا آنها را نمیشنختم. با آنها همدم نبودم. فضت و سلطان برای من نمونده مردم وطنم بود.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 احساسات دروغی آنها مرا میزد همهیشان گوشت تن مرا طلب میکردند در صورتی که من آرزو میکردم روح خودم را رو نسار کنم. جسمم را میخواستم به کسی ببخشم که روح مرا رو اسیر کند دلم میخواست آن چیزی را که خودم تشنش بودم با زد و خرد و به زور دریابم نه اینکه کسی بیاید پیش من و از من خواهش و تقاضا کنند. اما اینجا در تهران در حضور این مرد باستهداد با این مرد ستم دیده سرسخت که هنرش را فدای انسانیت میکرد آخ چه میگویم آخ چقدر دلم میخواست آنچه نمیتوانم بیان کنم حالی شما بشود